روز همگی شما به خیر، آیدوارم حال دل هاتون خوب باشه. در این زمان مهمترین عناوین خبری مربوط به پناهندگان در هفته گذشت رو به سمت شما عزیزان میرسونم. کمپ های چادری پناهجویان در دانمارک برچیده می شوند. در پی کاهش شمار پناهجویانی که در سال 2016 از دولت دانمارک تقاضای پناهندگی کرده وزارت مهاجرت این کشور اعلام کرد که اردوگاه های چادری پناهجویان برچیده می شوند. این خبر از سوی وزارتخانه مهاجرت و ادغام دانمارک موجب طرح انتقادی شدیدی علیه دولت فعلی این کشور از سوی رسانه‌ها شده است. منتقدین با اشاره به هزینه های بالایی که راه اندازی هر یک از این کمپ‌ها در پی داشته، از سوی انگرستوربرگ وزیر مهاجرت دانمارک پرسیدند این همه حیاهو و بدنامی برای دانمارک که صرف راه اندازی کمپ‌های چادری شد، آیا کاری جز دور ریختن پول مردم و مالیات دهندهان نبوده است؟ وزارت مهاجرت اعلام کرده که تا پایان ماه جاری میلادی تمامی کمپ های چادری در دانمارک برچیده خواهند شد بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده در حالی که در سال 2015 بیش از 21 هزار نفر از دولت این کشور تقاضای پنندگی کرده بودند در هشت ماه نخست سال 2016 این رقم به کمتر از 4700 نفر رسیده است. خشونت و تهدید علیه مادر و فرزندانش در کمپ گلاسلوید طبق گزارش قربانیان این حادثه چند روز پیش یک مرد ایرانی عرب زبان به حمایت از یک کودک عرب کویت یک زن و فرزندش را مورد خشونت و ضرب و شد و تهدید قرار داد. ماجرای از آنجا شروع می شود که فرزندان طیبه که اهل افغانستان هستند بارها مورد آزار و اذیت یکی از کودکان کمپ که اصالتا کویتی است قرار می گیرند در پی این آزار و اذیت ها طیبه اعتراض می کند و بارها به مسئولین کمپ تذکر می دهد اما آنها هیچ نوع عکس نشان نمی دهند و این موضوع را ترتیب و در این موضوع ترتیب اثری نمی دهن. در نهایت یک ایرانی عرب زبان به حمایت از کودک کوویتی این مادر و فرزندانش را مورد ضرب و شتم قرار می داد و تهدید می کند که آنها را می طیبه بعد از درگیری با مسئولین کمپ به کم مراجعه می کند و به پلیس اطلاع می داد. اما باز آنها هیچ کاری برای خانواده انجام نمی دهد در نهایت طیبه به بی بیمارستان بستری می شود و تعدادی از افغانها به تبعیض علیه افغانی ها در کم شکایت و اعتراض می‌کنند. همکنون طیبه از بیمارستان مرخص شده و از تهدیدهای مرد مهاجم خود را نزد دوستان و آشنان خود پنهان کرده است. خبری از نروژ پناهجویان با پرونده های بی سر و ته دستگیر می‌شوند. دولت نروژ طرحی را به تصویر رسانده که بر طبق آن پلیس دیگر می‌تواند پناهجویان با پرونده های ساده و بی سر و ته را دستگیر کند. از روز جمعه پلیس اختیارات و دستور لازم را جهت دستگیر کردن پناچوان با پرونده های ساده از وزیر امور مهاجرت گرفته است از روز اول سپتامبر سخگیری بیشتری در نروژ علی پناچوان اعمال شده است مرکل میگوید تا اوایل سال آینده تمام پرونده های بررسی می شود مرکل صدر اعظم آلمان فدرال انتظار دارد تا بهار سال آینده تمام پرونده های در آلمان به بررسی گرفته شوند. مرکر میگوید در اوایل سال آینده همه پرونده ها به بررسی گرفته خواهد شد. البته جدا از کسانی که اوراقشان یا کامل نیست یا آماده نمی باشد در سال جالی در مجموع روی, روی هم هم هزار پرونده تصمیم گیری خواهد شد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز چهارشنبه گزارش خود را درباره وضعیت کودکان در جهان منتشر کرد. بر اساس این گزارش نیمی از جمعیت پناهجویان در جهان کودک هستند در سال گذشته میلادی یکصد هزار کودک تنها از هفتاد و هشت کشور درخواست پناهندگی کردند. این آمار نسبت به سال 2014 سه برابر شده است. تید جایبن از مدیران یونیسف درباره اقداماتی که باید انجام شود گفت ما باید بتوانیم در مدت زمان کوتاهی برای این افراد وکلایی انتخاب کنیم. این موضوع یک مهم موجب تصریح بررسی درخواستشان و در نتیجه مشخص شده وضعیتشان می شود. مشخص می شود که آیا این افراد به عنوان پناهنده شناخته می شوند یا اینکه به عنوان مهاجر. سپس اگر ای داشته باشند می توانند با آنها بپیوندند و همچنین قادر خواهند بود که از سرویس های آموزشی و امکانات دیگر استفاده کنند. اداره مهاجرت هلند اقامت دهها پرنده ایرانی را پس گرفت. دلیل پس گرفتن اقامت ها این بوده است که اطلاعاتی که این دست از پناهجویان در بعد درخواست خود ارائه داده و بر اساس آن موفق به دریافت جواب اقامت شده با فعالیت هایفیسبو فیسبوکیشان در تناقض قرار داشت است. در یکی دو هفته گذشته دهها پرنده ایرانی که بین دو تا پنج سال در هلند اقامت داشتند به دلیل تحقیق بیشتر تحقیقات دیجیتالی اداره مهاجرت هلند، و با هماهنگی پلیس بخش سایبری های اقامتشان پس گرفته شده است. دلیل پس گرفتن ها این بوده که اطلاعاتی که این دسته از پناهجویان در بدو درخواست خود ارائه دادند و بر اساس آن موفق به دریافت جواب اقامتشان شدند، با های فیسبوکیشان در تناقض قرار داشته. و فعالیتها و اطلاعات فیسبوکی آنها این ابهام را ایجاد کرده که آنها به اداره مهاجرت دروغ گفتند. در نامه های منفی اداره مهاجرت اشاره شده که در این تحقیقات پوست ها، و حتی کامنت های آنها به طور کامل رسد می شده است گزارش واحد تحقیقات دیجیتالی در حالی انجام گرفته که این, این کاربران صفحات فیسبوکی خود را خصوصی کردند و تنها دوستانشان می از صفحات آنها دیدن کنند. بهبارتی این نشان دهنده این است که حتی خصوصی کردن اطلاعات شخصی در فیسبوک نیست به معنی اطمینان از عدم دسترسی دولت ها به اطلاعات فیسبوکی نمی باشد. خندون، دلاتون و شاد و سفره هاتان